گفتند نمیخواهیم نمیخواهیم که بمیریم گفتند دشمنید دشمنید خلقان را دشمنید چه ساده چه به سادگی گفتند و ایشان را چه ساده چه به سادگی کشتند و مرگ ایشان چندان موهن بود و ارزان بود که تلاش از پی زیستان برنج بارتر گونه یبلها نمینمود سفری دشوار و تلخ از دهلیزهای خمندر خم و پیچ اندر پیچ از پی هیچ نخواستند که بمیرند یا از آن پیشتر که مرده باشند بار خفتی دوش برده باشند لاجرم گفتند که نمیخواهیم نمیخواهیم که بمیریم و این گونه ای بود پنداری که اسبانی ناقاهان به تک از گردنهای گردناک سب با جلگ فرود آمدند و بر گرده ایشان مردانی با تیغها براهیخته و ایشان را تا در خود باز نگریستند جز باد هیچ به کفندر نبود جز باد و به جز خون خویشتن چرا که نمیخواستند نمیخواستند نمیخواستند که بمیرند